حرف ما زای دستدار نوک زبون میخوره به لبه سنایای بالا بینیتون رو بگیرید بیاید پایین چهار تا دندون در امتداد بینیه بهش میگن دندانهای سنایا سنایا با سه سنخته. دو تا بالا دوتا پایین سر زبون رو به دندونهای سنایای بالا بیش پرخورد میکنه ولی فشار نمیدیم، مماس میکنیم بدون فشار. اگه درش بخونیم میشه زا ی دستدار ها. وا وا وا والمین، وا, وا وا وا والمین. اگه نازک بخونیم میشه زال. مثل ذالک ذا ذا ذا ذا اما اگر هوا دمیده بشه سه نقطه میشه. س س س فم فم پس حرف وا با دو حرف وال ذل و ث ث مختصیه النساء با هم یکی هم مخرج از یه جو تلفظ میشن وا و روش اون دو تا نازکن